بسم الله الرحمن الرحیم جلسه هشتم کلاس فقه مقارن استاد ما از زمزیاوی هفتم آزرماه 1401 <تصفيق> یکی دیگه بحثایی که در فقه مقارن اهمیت داره بحث ادالته مفهوم ادالت مفهوم شناسی ادالت ببینید شما ادالت رو تو جاهای مختلف اسمش رو شنیدید شما قای اوان یعنی ادالت امام جماعت ادالت قاضی ادالت شاهد ادالت شاهد من یه مثال بزنم براتون شما الان اقتدا کردید به یک امام جماعتی رفتید مسجد به یک امام جماعتی اقتدا کردید خب تو اون لحظه‌ای که داشتید در واقع میخواستید اقتدا کنید حالا همین بنده خدا رو ظاهرش رو دیدید دیدید مؤمنین و متدینین هم بهش اقتدا کردن شما هم از قبلی آقا مثلا یه اجمالاً شناخت داشتید دیدید که انسان ظاهر و سلائی هم الانش هم هست مؤمنین و متدینین هم بهش اقتدا کردن شما هم اقتدا کردید نماز خونید اینه فرض تمام در موقع طلاق میگن طلاق اگر میخواد در واقع جاری بشه نیاز به در داریم دیگه یه شاهد گرفتن دو نفر میان شهادت میدن برای طلاق یعنی آقایی میخواد خانمش طلاق بده یه دو تا دوستاشو میگه بیان آقای مثلا تلفن میزنه فلانی و فلانی بیایید به عنوان شاهد قرار بگیرید سیغه طلاق جاری میشه مثلا پنته طالقون همه شرایط هم هست حالا شرایط یایتونه متلق شرایطی داشت متلق شرایطی داشت سیله میخواست اشحاد میخواست همه شرایط هم هست شاهد گرفتن شرط شاهد بودن عادل. شاهد باید عادل باشه این دوتا مثال درست شد حالا هفتهی بعد از این واقعه بعد از حلاق و بعد از اون نماز جماعت شما هفته آینده مطلع میشه اون آقایی که بهش اقتدا کردی برای جماعت انسان فاسقی بوده یک از این دو دوتا شاهدی هم که شما شاهد گرفتید برطلاق میفهمید که اونها هم انسانهایی چی بودن؟ فاسقی بودن آها این دوتا چی میشه؟ اون نماز باطل یعنی نیاز به قضا داره یا نیاز به قضا نداره اولاً. چون شرط امام جماعت چی بود ادالت فهمیدی که اون تایم ایشون ادالت نداشت شرط اشحاد شاهدم در بحث طلاق عادل بودنه سیغه طلاق هفته پیش جاری کردی انته طالقون تمام یه هفته گذشت دنبال زفاج مجدد هم از طرف بعد میفهمی که آقا شاهداش با هم دیگه شاهداش عادل. نبودن. انسان های فاسقی بودن انسان در واقع عادلی نبوده آیا بین این دوتا ادالت فرق وجود داره؟ ایا یه ای نماز صحیح با همون مفهوم ادالت پس به این سیقه طلاق هم درسته طلاق جاری شده یا نه؟ اینا با هم دیگه فرق دارن در باب مفهوم شناسی ادالت یه فرق بین تا تفاوت قائل شدن آقا گفتن ادالتی که در نماز جماعت هست با ادالت در شاهد ما هم فرق هم. در اینجا در فتابایی که صادر شده از نظرات به صلاح فوقه های گفتن اون سیغه ای طلاق فاسده یعنی لعاب دوباره باید صیغه طلاق خونده باشه ولی اون نماز صحیحه رضا ارسلان چیو از من میگم الان عرض میکنم دلیلشون حالا در اینجا میگم الان عرض میکنم بله الان دلیلش بعد ببین دیگه, دیگه, دیگه پس ببینی کلمه ادالت یک کلمه ای که با توجه به جایگاه استعمالش باید ترجمه بشه و شما ادالت رو ما یه ترجمهی داریم از ادالت بله میگیم ادالت یعنی چی؟ میگیم ادالت یعنی کسی که مرتبکه به فست نشه تظاهر به فست نداشته باشه درست شما؟ حالا مفاهمی که برای ادالت گفتن یا اگر هم ثابتاً مصحوب به گناه طرف خوبه کرده باشه از خود. اما خب چرا ما میگیم اونجا صحیحه ببینید میگن عدالتی که در اونجا هستش در امام جماعت اون یین عمل باید عدالت رو اعتقاد داشته باشه اعتقاد کی ملاکه؟ این شخص نه, نه. این مسلوی ولی عدالتی که در اونجا هست عدالت واقعی باید باشه نه اینکه به زرم من عادل باشه یعنی محابت چی باشه واقعا؟ عادل باشد لذا اگر کشف خلاف بشه میگن آقا او سیغه عقد باطله پس ببینید چه فقط مفهوم ادالت یکی شدا ادالت یه معنا داره اما تو جایگاه بکار رفتن مفهوم ادالت این دوتا با هم دیگه اختلاف پیدا میکنند لذا الان شما سیغه طلاق میخوان بخونن معمولاً توی این در خاطر ای که سیغی طلاق رو چی میگن مجبوز طلاق هم همه همه بهشون نمیدن حتی ده تا بیست تا مثلا یکیشو نمیدن اینا هم معمولا طلاق رو میان در حضور معمولا علما میخوند حتی میان با وکالت از مراجع تقلید مثلا در حضور مرجع تقلید مثلا ده تا بیست تا سی تا که هست اونجا میخوند چون ادالت چی میخواد؟ واقعیه میخواد لذا بردن مثلا همینجوری دو تا شاهد باشه برای طلاق احرازش کار سختیه. کار داشتم یه طلاق بله. من دارم. خدا وراها آره، ولا طلاق تو امروزه که دیگه طلاق رو خود اشخاص انجام نمیدن دیگه یه جنبه حقوقی پیدا کرده نه یعنی که اینایی که قاچاقی ازدواج میکنن با هم دیگه. دلیل خوبی نیست اونجا بگیم ما ادالت واقعی میخوایم اینجا ادالت ظاهری من به نظر میرسه که برای طلاق شرایطام جزء اصلا جزء تشریفات طلاق یعنی چی تشریفات یعنی این که تا زمانی دو تا شاهد عادل نباشن طلاق واقع نمیشه یعنی فوتاشون چه یعنی اصلا نشده خب خب جزء شرایط تنظامی طلاق عدالت در شرایط اساسی باید همیشه باشه شرایط اساسی نباشه اصلا عقد واقع نمیشه خب اما در بحث طلاق که یه واقعه جزء شرایط اساسیش اینی که دو تا شاهد عادل عادل باشن اینا نراوشن طلاق واقع هم هم آره دیگه همینا میگن اصلا طلاق فاسده دیگه. آره که اینجا در شرط... طلاق شرط واقعی رو می‌خاریم. عدالت واقعی ادالت رو رو. آره لذا اگر تو طلاق عدالت واقعی نباشه یعنی طلاق فاسده یعنی چیه اصلا؟ واقع نشده. این واقع نشده دیگه. اصلا واقع نشده طلاق. لذا باید دمارست. <مشتور> درسته درسته درسته درسته درسته درسته ما ما درسته درسته آره همین که شما علم داشته باشید به عدالتش کفایت میکنه این اگه فرض و کشف خلاف بشه شما میگی من اون زمانی که شرایط اساسی نماز که امام جماعت عادل باشه نیستید امام جماعت شرطش عدالت دیگه دلسته دلسته ببینید تو اهل سنت حالا همینجا فقه موارننس کنین ما تو اهل سنت نسبت به عدالت با هم اختلاف دارن اولا اونها قائل به بعضی از مذاهبشون ادالت اصلا نیستند یعنی میگن، حالا خودشون ما یه اختلافاتی دارن، میگن اگه طرف فاسقم باشه شرط امام جماعت فاسق بودن نیست. امام جماعت فقط باید چی بلد باشه؟ اقرع باشه. یعنی قراعتش در نماز درست باشه، اقرعیت رو کافی میدونن. یعنی امام جماعت شرطه اقرایته یعنی کسی که قرا قرائت که مفهوم عام یعنی احکام نماز رو بلد باشه که از جمله احکام نماز مثلا قرائت نمازه اهل سنت از این شرط نمیدونن بله امامیه عدالت رو به من شرط امام جماعت میدونه و این نکته هست نکته اینه که بازم تو همین نماز که یه بخشی از همین جا بازش کنیم بعد ادالت امام جماعت خود نماز جماعت حکمشیه ببینید ما در فقه امامیه قائل هستیم که نماز جماعت مستحبه فقط یه قیدی بهش میزنیم میگیم مستحبه معکده اما میدیم تو فقه اهل سنت میبینیم اینها دو دسته قول دارن یه دستهشون قائل هستن که نماز جماعت اصلا جنبه وجوب داره میگه نماز جماعت واجبه مگر برای کسانی که صاحب عذر هستند یعنی اگر کسی عذر نداشته باشه نماز جماعت رو ترک کنه فعله حرام استنادم میکنه به یه دسته از روایات نبوی که وجود نازنین پیامبر تأکید دارن به در واقع صلاۃ به جماعت مخصوصاً اون روایت معروفی که لا یه... لا لا نه نه لا صلاۃ الا فی اون نابیناه اون شخص نابینایی که با اینکه نابینا بود گفتش که من نابینام نه حضرت گفتن نه نابینا هم هستی بازم از تو به من عذر برای تلقی نمیشه مثلا از اینا استفاده میکنن که نماز جماعت باش اما مشهور اهل سنت هم قائل به استهباب در واقع نماز جماعت هستند. پس هم اصل نماز جماعت هم ادالت نماز جماعت امام جماعت رو اهل سنت توش بحث دارن عادل بودن و اکثر علماء اهل سنت شرط نمیدونن میگن حتی شما یقین داری به فسقه امام جماعت نماز جماعت مشکلی نداره چون فقط قائل هستند به اقرع بودن اون و همش هم تمسک میکنن به یک روایتی بخونم براتون یتی که از در واقع ابن رشد میگه يدل علیه یعنی بر همین مطلب که گفتیم که جایزه که امام جماعت عادل نباشه ما اومدی میگیم که تو فقه امامیه میگه لا خلافه بین فقه های الامامیه الاشکرات العدالتی امام الجماعه اما میگه تو اهل سنت میگه که یدل علیه بر همین در واقع دیگه از عبارت پرینتشو من نگرفتم میخوره به جواز عدم عدالت امام جماعت ان اجماع المنسوس ان الصلاه خلف آقل قاتل درست؟ و المقارفل بل بلفسقه و الفاجره و غیر والخمره و شارب و الخمره همه آره اینا رو چی میدونه؟ جایز میدونه یعنی خلف این آدما جایزه بعد تو معنای فسق میاد که آقا فسق چه معنایی داره دوستان؟ کلمه فسق من یه توضیح بدم تو مباعث الفاظ یه بحثی داشتیم به مشترک لفظی ما یه مشترک معنوی داریم یه مشترک لفظی مشترک معنوی این بودش که یک لفظ دارای یک معنای جامعه یه معنای کلیه یعنی داره یه معنی زو افراده مثل انسان مثل شجر انسان 8 میلیارد مصداق داره، فرد داره، شجر ملیون ها میلیون، هزاران، هزار، میلیاردها، مل، میلیارد مصداق داره. درست شد؟ یه مشترک لفظی هم داشتیم. مشترک لفظی این بودش که یک لفظ چند معنا داشته باشه. شیر. مثل شیر، مثل این بعد تو این بحث اختلاف دوستان وجود داره که اصلا آیا مشترک لفظی ما داریم یا نداریم که بین دواره امامیه و به صلاح اهل سنت خیلی یه اختلافه که اش اش مشترک لفظی چیه این دیگه گفتن جوازه در واقع یعنی هم امکان دارد هم چی شده واقع شده این دیگه گفتن عدم امکان یعنی اصلا امکان نداره افنام چه برسه به چهیچ بگی؟ روغوش اصلا میگه باغه هم نشده او میگه عدم جواز استعمال فی القرآن میگه یعنی ولی تو قرآن استعمال نشده ادهی میمدن میگفتن اصلا وجوب به استعمال مشترک لفظی یعنی اصلا مشترک لفظی واجبه که دوست باش یعنی اصلا اگر نباشه اصلا نباشه قابل زندگی نیست نیمان. اختلال نظام پیش می حالا ببینید ما تو فقهمون دوستان یکی از شالش هایی که ما داریم مباحث لغاتی که به کار میده آقا فسق فسق یعنی چی آیا مثلا خصوص گناهی کبیر است کسی که گناه گناهی کبیره مثلا انجام میده یا نه کسی که سببن گناه داشته ولی الان چیکار کرده توبه کرده هم طوقه کرده یا مثلا اصلا ملکه ملکت یا اصلا یا دیگه میگن می کسی که ولو سفیره مرتکب بشه ببینید معانی مختلفی دارند حالا باید ببینید اصلا همچین چه حالا ما عینم داریم یک کلمه عین همیشه مثال به چی میزدن این. این که خیلی اون موضوعیت نداره تو فکره تو فکر کلمانی داره که کاربرد داره مثلا فتوا رو عرض میکنه مثلا این مثلا اوقات به معنای چشم گای به معنای چشمه مثلا گای به معنای تلاس مثلا عینا جاریه این میشه چشمه اینم باکیه میشه چشم مثلا گاهی این به محنای تلاس این که میگن جواز امکان داره واقع شده میان میگن آقا دلیل ما ما اینه که میگیم هم امکان داره هم واقع شده بهترین دلیل ما نقل اهل لغته شما برید به کتاب های لغت مراجعه بکنید میبینی کتاب لغت مثلا برای فست و برای عین یا کلمات دیگه معانی مختلف رو ذکر کردن بهترین دلیل ما اینه یا یه دلیل دیگه هم یا ذکر میکنن میگن آقا توادر یعنی یکی از علامتهای ما توادره شما متوادر به شما مثلا از این همچیه چشم هم چشم هست. هم مثلا تلا شما تو فارسی خودمون الان شما میگید شیر وقتی بینید شیر هم امکان داره این شیریه که انسان میخورش هم شیری که انسان را میخورد درست؟ همشیر بیشه تو ذهن ت رو پیدا می کنه همشیر یچشیری یخشا. که میخوره دیگه درست شد تاز رو پیدا کنه. <تصفيق> لذا به میگن هم امکان دارد این تمازک کاپدیو میشه هم امکان داره همه بگید واقع. واقع. واقع شده است. نقل لغت و در لدلی در امکان او بو با درست شد. تاق عدم امکان عقل اصلا امکان نداره یک لفظ دارای چند محنا باشه میگیم چرا امکان نداره یه دلیل خوب میارن حتی رد میشه دلیلش میگه این کار باعث اجمال میشه باعث چی میشه؟ اجمال میشه و این خلاف حکمت در واقع وضع لفظ ما الفاظ برای حکمت لظ چه گفته گفتگو کردن دیگه ما گفته گفتگو کنیم تفهم و تفق و متفاهمی اصلاح داشته باشیم اگر شما این رو به کار ببرید من امروز بیام به شما بگم دوستان بسم الله الرحمن الرحیم تو عینا شما از اون لای زیایی تو که چشمه زیبا دیده مثلا پشت چش بدی گذاشته یا بگو طلبیه نوشته در این خیلی قشنگ نوشته بود نوشته بود لا اینم این میشه غیر میگه این اجمالگوی خلاف حکمت و ظهره دوستا یه جواب به این بدید سریع آقا این فیست میده میگه امام جماعت نباید فاسد باشه میری که تو لغت نگاه بگوید میگه یا آقا بیسته معنی نمیشه کدوم نباشه؟ این میشه چی؟ اجمال بگوید یعنی یا این روایت میشه جز مثلا مجملات جواب بدیم؟ مرمولت محطوب دا خرابایی آقا اجمال چی که بدون چی باشه؟ قریده واقعا ما همیشه اینن یاد قرآن بکنید اینن یشربو به ما اوالالله راست که ببینید آقای اینن یشربو خودش دلیل نمیشه یا مثلا رعیدی تو اینن باکیه تو که رو مثلا اجمال دونی خلاف اکمالی لفظ میخواد اجمال بگیرسن آه اصلا اینو مقابل میشه بگم بهتون اصلا آقا قرآن خودش آیاتشون دو دست بمیکنه ها رو، شابات یه اصلا گاهی آنها من هست سر کلاس هدف هم چیگه بر شما؟ اجماعی هم اجماعی همه اصلا اجماعی همه آقا فیلم مثلا من یه اصلا مثلا قتلن نه مخابی کرد گوتله، گوتله، گوتله، مثلا یعنی یه نفرو بگم مثلا گوتله چی رو مثلا آن زید بگم مثلا گوتله، کشته شد شب زید شما چیه زیدی مثلا؟ از نزدیکان زیدی من میدونم قاتل کیه؟ مثلا قاتل یا هست؟ الان اگه بگم مثلا یه تله فلانی رو چی پیش میاد؟ شما به همین می‌داریم یه قطع دیگر پیش میاد لذا اصلا یکی مرد ایجاد بودار که من چکار کنم مجهور بگم نه اینکه شما بفردیم بفردیم بفر. گاهی اوقات خواهد مزمونی گفتن یه هدفی داره درفتیه این که ایشون فرماندن ادمار روی خلافتی مثل در مرده اون چیز رایجه شما بود اون مخانمه رایه کسی خیلی هدفش بشه اجمال تو صحبت هایی بله مثلا در مقام تدریسی، التهانی، منکره چیزی باشه اجمال رونه جایگایی داره اونم محفوان انه وی چیزی تویشون محفوان انه این شما در ما بیاری نمونه ایچه طرف کخت خود داری شما شدید خب خداش شما یه نمونه بیاری. بیاری. یه گفت یا نکنه اینو گفتم ببینید ما نوع استعمالات ما یه نمونه‌ای بر ما رو, رو, رو, رو, رو, رو بدی که یه لغتیه طرف قصد اجمالی نداره ولی کلامش مجمع شده میایی ادبیات عدبیات پیدا نمی کنی یعنی شما یه رعیت پیدا کن که بگم او من نماسی گذرد قصد کنم این رو بسن مولم ولی نتونستم تو فارسی خود اون کنم شیر الان ما مثلا شما خانواده توی شیر رو ترگیاد خب شما اصلا اجبال توی یه یعنی شکت دونی که بردارم شیر آب بکرم گذاش یا برم شیر یعنی من قرینه قرینا حالا قرقوار خالیه است گویا یعنی اصلا اجمالی نمیشه اگر اجمال باشه هدف من چی بوده اجمال بوده. اجمال میده من دیگه بله. <تصفح> یه دیگه عین دیدم حالا را عین جو عینا سر کار هستن شما قالو تو دو دو دو دو دو چشم نیست نیست ولی چش زیاده چش زیاده پس این هر درستی دوستان درست نیست، پس اجمالگویی خلاف حکمت بزقه اجمالگویی بدون بگید هدف هدف ولی قرآن خودش آقا هدفمند من اجمالگویی کرده؟ مگه قرآن خودش تصمی نمی کنه؟ محکمات و یاد بیام میگه عدم جناسه استعمال در قرآن بیام آقا بداریم ولی میگه تو قرآن نمیشه داشت میگه چرا تو قرآن نمیشه داشت چرا تو قرآن بیا و دلیل بهتون بگر چون اگه تو قرآن به خاطر لفظ مشترک باشه مشترک اجمال داره شما باید که گفتی اگه اجمالش بخواد برطرف بشه چی نیا سر دوستان؟ قرینه نمیخواد میگیم در سیزی رو همین قرینه شما که میگی اجمال داره مشترک همه تو قبول دارید؟ بله قبول داری چی میخواد؟ قلیل نگم یا با قلیل تو قرآن شما بیارید با اسم این چه میاند؟ تطویل قرآن میشه طولانی شدن قرآن تطویلی که بدون چیه؟ فایده یعنی نقش این کلمه فقط این بوده توضیح این کلمه یعنی الا تشفیق دسته از کلمات قرآن میشه سیاهی لشگره زاهده قرآن یعنی یعنی یادتونه تو عربیات به یاد میگفتن که مثلا حروف جنگ معناشوشیه زاهده مثلا این سی رو کنید بله چه بله. جمسوشی؟ به آلمن میگفتید این با چه در خب این زائده ولی یه معنا داره زواید همهشون چیز دوستان معنا دارن معنا چی بود تحکیفه تحکیفه یه معنا نیست یه معناست پس اصلا زائد این که بگیم آن این چنم یعنی شما فکر میکنید که ما که فارس زدانیم درک نمیکنید یا انن رو بهتون میگم دوستان خیلی جالبه تو انن این دیگه آثار اهل سنت تو انن انن به چی گفته مشبع تو به فعل بشه مصدریه قبل مصدری بره انن بر کارش چیه انم بگید تعجیه دیگه تحكید. خب یعنی چی؟ یعنی یه عرب زبان من رو بگید دوستش بگه زیدون آلمون مثلا یه ما رو دوستش بگه زیدون آلمون یه ما رو دوستش بگه ان نه آلمون سقط بگیم یه تحکیت داره اولا یه تحکیت خودش عرض کردم یه معناست روح تو ادبیات میگن میدونید محل استعمال این کلمات کجاست. یه عرب‌ها اونها جایی جمله اسمیشون رو با ان میاد چه اگر ان نیاره او به شک بیفته یعنی تأکید میکنه تأکید یعنی رفع میگی شک رفت دودلی دودلی دو دلی جات میکنه اگه تأکید کنه به تاکید اما تاکید یعنی رفت چی شک یعنی اگر این ان نیاره او شک میکنه منجوو تصحیح بکنه که این عالم از عالم چه هست این فرق رفع چی بکنه دو دلی بکنه رفع ابهام بکنه پس یه که اجمال باید با قرینه بیاد تو قرآنه قرانه قرآن یه قرینه بیاری باعث چی میشه تطویل قران طولانی شدن قرآن طولانی شدن بدونه فایده باش این چیزی جواب بدید اولا در شدن نمیشه این این که چه است شده شدن که تو کلمه شده محاویه. خود اون کلمه این خود اون جاریه داره. کلمه ببینید این آیه شریفه رو بیارید آیه عینت سرچ کن به یشربوا آقا قبل یه آها، الان این مشترک، درست مشترک کاری اینه، این این که یک چنین صفت دارد یک صفت جمعه بعد از نکرشی دوستان با و خب بیرین این الانی دیش رو به ما خب کلمه شرب داره شرب آیه شیر مثلا این که به معنیه چی بود این مثلا چشک آیه اینه نه آیه به معنیه تلاس نه خب قصن انصراف داره به چی؟ استرحالا میگن قلیلی معیله است قننیه معین یعنی تعیین میکنه که این این حتما به معنی چی بگیره آقا چشمه هستش خب حالا این یهو تطویل میشه راست دیگه میشه طولانی شد طولانی شد این دیگه دیگه دیگه مادی نگاوریش شد طولانی شد دیگه این دیگه اینا روش ادا اما بدون فایده است اول دلوقت دلوقت دلوقت. نه اول اثر فایده ندید اتفاقاً با, با این جمله خداوند هم مهلای این را روشن که هلین محکومه جدید های است. خود نیستی نیست دیرسن به این پیف قریدن هر قریده اینکه داده بر دواهده دل اینایی این مهلاس بگه بس درده اینکه شما میگی عدد جواز استعمال در قرآن یعنی بگید پس این چیه؟ این استعمال شده دیگه من یکی میگین اینجا مشترک رفضی میسی که قلط قفتن این همه مثال رو چی بزنم مشترک جا... من لفظ آگیده ما اصلا تو قرآن استعمال نشده باشی چشم داره مگه همین چیز قرآن استعمال شد حالا مثلا این برنه خدا اصلا اصل اصلا صحبتش اینه که تو قرآن استعمال بیگه تو قرآن نباید بیاد نباید ایمده نه ایمده باشه. قرآن بحثی از عربه اون لغت عربه تو سایر چیزایی که اشعارش اومده مثلا میگه اجمال درست در اضافه کردن که ما همون جواب بالایی به این میگم خود قرآن داره گفت سوره قرآن دیگه میگه من دو قسم بالا دارم محکمات متشابه متشابهات چی؟ یعنی اجمالگویی. اصلاً میگه هدف من چیه اجمال‌گویی اجمالگویی تو دوستان و خودش یه چیه ما حکمت یک حکمت اما خود چهارون میاد میگه وجوب استعمال مشترک لفظی یعنی چی؟ یعنی یه اصلا واجب که ما مشترک داشته باشیم. اگه نداشته باشیم مشترک مخالفه دوباره حکمت میشه اما نیگه بده برزه. ببینید دوستان ما چند تهر حرف کنه الو من 28 درست <تصفيق> شد 28 عدد محدود یا نامحدود محدود محدود ریسه در ترکیب کنی با هم دیگه مثلا میلیون کلم میلیون مثلا شما بگو آقا یک میلیارد بازم چیه, ملیون. ملیون. بازن چیه محدود هست نمونه نیاز ما آه, آه این محدوده دوستان پس این محدودیش که از حرفی نداره این مورد قبول شماست در واقع محدودیت رو شما قبول دارید اما دوستان این باینر شما چی تولید کردی لفظ لفظ در خدمت چی میگی؟ معناست معانی که ما داریم چیه محدود یا نامحدود محدوده میگه نمحدود؟ معانی نامحدودن معانی نامحدود هستند خداوند نامحدوده محدوقاتش هم نامحدوده اصلا جماله بودی حدی حتی دوم هم باید یه معلای یه معلای است میخواد شما محدودیت داری تو الفاظ تو معانی نامحدوده جبران این فاصله بینیلی باید با چی پر کنی شما؟ مشترک نفسی تا تله وجوب رو نبردگی ولی که بهش وجود شده دیگری واجبی بعد باشه که محدودیت کلمات باعث به ایجاد این میشه که مشترک لفظی شما خلقش کنی تاسیسش کنی باید باشه که جوابگوی اون معانی باشه معانی برای یه حرف بزنم دوستان این رو جواب میگه نه تو البحثیت و منفیش. تو جدار فقهی و تصمیلیش از می ایشون یه دیگاه اومد یه فلسطهی به شما اصلا فلسطه مشترک لحظی چیه اصلا مشترک لفظی چیه دوستان ببینید وضع وز... هی دونه حلی کلامیش رو کلام بشه وضع یا تعییمیه یا تعییمیه یا یه آقایی اومده گفته وضع حتی لفظ فلان را لفظ فلان بهمه یا نه تعییمیه کس با همون پاندیه رو تونه بیا بیا, بیا فرنی که جبهه اصلا میهای یعنی مانی آدار تولشه ادبیات بچه های جبهره یه روت خاصی بود اصطلاح اون وقت وقت می گردنکن وقتی چی بود تعیونی بود برجات هم یهرانسه آا زدن آفریه این گرژکی از با دن یه مثلا یه سردار یه پاستار یه دسیجی یه عرب تشیدی هم دهی لفظ مثلا هم گرفتن، شد تو مثلا شرد با سون تبار دل هایی نمی دیده نمی دهید هاچی گیری نخ, ها نخ مثلا. <تصفيق> <تصفيق> یا مثلا فرنگ حجره دوستان عدمیه تو مدرسه حجر که کردید دیگه ها فر... فرهنگ خواستی خودشون دارن با هم دیگه فرنگ فرهنگ است یا یکی یعنی سوشینه فرهنگ نیستی کنه، فرهنگ زنگر، فرهنگ حجره فرهنگی فرهنگ <تصفيق> اینا به بعد وضع یا تعینیه یا تعینیه. قبول داریم؟ آقای سویتی میاد فلسفه مشترک لبزی میداری چیه فرمانه نمیکنه چه تقیی چه تقیی لغت چه درست شد بگه عقب تاریخ رو یه زمانی که مردم قبیله قبیله زندگی می‌کردند، جدایی از هم, هم زندگی می‌کردند، ارتباطی هم با همدیگه نداشتند. که به جزیره ارستان مثلا شما به دیر داوشه پیدازگیری دارا قبوترش الان یه تایفه جمدن. یه جمله یه تایپو جو یه تایفه. هر کدوم برای نیاز خودشو لفظ تولید کرده هر کدوم برای نیاز خودشون لفظ حالا می‌خواستن این قبیله گفت اینه برای حالا اون یکی که قبیله برای چشمی خواستن گفت این اون یکی برای مثلا چشمه بود گفت این اون یکی برای جاسوس بود گفت این او یکی قبیله برای دامور بود گفت اینگر اصلا با هم ارتباطی هم نمشونم می تونستن ارتباط داشتاشت بعدها اینو دستان سویتی هم هم از من نیستان بعدها لفت نویسا اومنه هر چه هم های که رو رفتن تو این قبیله آها اینم به چه من آتلا قبیله دوم اینم چشم. چشمه آه آها شش. برای نقره میگن از آن. برای نبره برای اومد اینل ای. لحظیه چیه؟ اما چند محنم؟ تا هم؟ سیوتی که خودش اهل سنت مخالف به بعضی از نظرات اهل سنت مع گفته، گفته با ما اینچونی که یه این رفت دشینه آقایی که تو میگی محدودیت و نامحدودیت داستان رو تحریف این برای کسی که یه رفت مشسته از بالا داره نگاه میکنه دیگه خب شما چون مح... مثلا شاره، شما محدودی خب برای اینکه محدودیت کنون اعداده حل کنم محدود برای تو مشترک لفظی درست بکنم یا این مشترک لفظی کنم مشکل بسنه حل کنم میکرسن وضعه لغات که اینجوری نمونه که خلاف واقعی هست ما هست الان ما هر زبانی یه علفه داریم شما تو کل زبان فارسی ما چند تا لغت مشترک داریم که اصلا حالا بگیم لغت کم آوردن رفتن آه. لغت مشترک شما این که بگیم نامحدوده یه تیره توی تاریکی میداریم این ها کدوم را رو کم دیگه بگیم بگی ندارم باشی که بشیرم اینجا برای معنی لحظی؟ پس چنها به ستریوتی اهلس برنن خوب حلقی میزنه یکیم اما مشترک اینجوری نبوده که یه نفر بیاد گرد دیگه ما بخام لحظه مشترک در خود دولید کنم از فردا لحظه این رو دو چهارتا معنام بچه ها از فردا بغایی رو, شیشتا این این رو نه. یه تو شیشتا معنام نمیم نفس که این کابلا رو تو اشتا معنام نه یکی چیز بگیم توی اینجا مثلا میگه اسمی امکندو رو همین این وسیله این وسی دیویز داره پیش نمونه شده یه اسمه حالا لغت نویز اومده نه لغت نویز کارش دیگه لغت نویز استقراحی می نویسه نقلی علمش علم عقلی نیست نقلیه میاد به صورت نقلی کشف خواهی و قواهی اومده دیگه ای اینجا این مردان این مردان لذا این جاستان محدود و نامحدودی چه؟ به نقل میکنم این حرف توقلاده در واقع از نحیفی هستش که ذکر میکنن و ما چون نامحدود، اصلا شما اصلا بستنلا یه برای همشی وز بود، اصلا فایده داره اصلا فایده داره، من یه برای نامحدود بگرم تو دنیا ببینم چه چیزهایی هست نیوه های مختلف اس باسش، اصلا فایده داره آدم مهمتی که فایده باسه همون داره چیه تو دوستان بگی؟ در مقام گفت و گو با هم دیگه در یک زمان مشکل نداشته باشیم میگه تو چون تاریخ پیناد رو کنی. کسی فیدنی میگو من مشکل دارم من لحظ کم کردم همچی چیزی؟ یعنی یک دایر که مورد نیاز هست به صورت ناخودآگاه انسان یاد چه گیره ما درستانی؟ هم؟ آموزش کنفرد تا شما؟ یاد بگیریم. خب همه ارخواست داده شد برگیریم به بحث خودمون دوستان مثلا نسبت به الفاظه که در روایات وجود داره یا در لسان فقا وجود در بحث که من مثال زدم یکی بحث ادالت بود یکی بحث نسب یا بحث اقرانعیت درست شد. اینا دو بوده احصاره. یه موقع بحث شما برمیگرده به ظرف استعمال کلمات مثل ادالت تو ادالت تو استعمالش کجاست آیا ظرف استعمالش تو بحث سلات جماعت یا تو بحث چیه بگیده ها؟ شاهد طلاقه ادالت یه مردمه درست شد میگه میگه ادالت چی یا ادالت یه دید. فست بندر به سوش آفست نوانی متعدد داره یعنی مشترکه آفست کسیه که مثلا چبیله کسیه که مثلا سقیله کسیه که ملکه کسیه که و اینا میگیم آقا اینا اگر فست مشترک لفظی باشه خوب دقت کنید رو بعضی از اهل سنت مشترک لفظی لذا اجمال پیدا شده شما یعنی حافظ زدیم. اگر مشترک لفظی باشه دوستان الا علاقه بعد با چی بیاد با قرینه حالا یا قرینه است بگی حالی است یا ملابی. اگر ما میبینیم که کلمه ادالت یا فرس بیونه کریده نمیاد پس محلوم حرفشون اشتباه این کلمه اصلا مشترک نیست چون این مشترکی بود ارضامت مرد مر با چی میرد با پرینیو با مشترکم نکاتش عرض کرد یه دیگه بس اما اقراییت دوستان تو اقراییت هم دوستان وین امانیه وین دوباره هم دیده روشی اختلافه بعضی ها اقرایت و خصوص چی میگن دوستان گراهت گراهتش خوب باشه نظر یه جه باشه یه تلوهی باشه از غذا چی هم باشه؟ مؤمن هم باشه از غذا مؤمن یه لگهی سفیدی هم داشته باشه لگهش هم که سفیده از غذا طولانی هم باشه که همه شاخصه ها رو داشته داشت داشت باشه لیایی یا ویدیو اما دوست ها ضعیفه اما یه نفر هست نه مؤمم نیست اصلا مؤمم نیست طلبه نیست طلبه نیست آقا اهل علم نیست هم هیچی بلد نیست اما با باشه بهش قراعت قرآن رو یاد تجویهش خوبه و سلاتش خوبه اگه بین این دوتا ما باشن کدوم امام جماعت بشه؟ حسنین بین این دوتا نهلی نداره چرا؟ آلمه به نور بشه، نیزمان بابله چه؟ خب افرانیه، از رو کدام داره کنه صبحان، رفیالالا، رفیالالا این هم درست این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 شما خیلی وقت آه من خودم یه نماز جماعت شرکت کردم که تشدید داره دوستان iya کردن بود iya کردن iya اونجا نیا زبون اون چیزی که هست اینه که همه می‌دونیم اون تشدید است ما می‌گیم بده بده اشتباه نمی‌ذستم اشتباه ندارم کردن آش با iya کردن می‌گم مثلا می‌دونید بعضی مثلا نخونه تو میدونه من دوست دارم نماز دکنم آنشی دوست دارست تو اطفاق بولن شهر درس اون اون قسمتی که خلافانش میدونن آقا به خالت اما جهدیه واقعا اینجا ایا نه ایا کرد تشید داره یا نداره؟ داره داره بزن نمیدونه من نمیدونه که داره میخونه منم میدونم اما رعایت کردن نمیدونه نمیدونه نمی الجوها او بعد بپرسم ایجا به چرا تشدید نموشون دوره اون نخواستم میذاه پیدا بعد من دوباره میخوام برام بگم میم ایجا کنم نمیاد الفوز دربیع اون هم لغتی لغت رو خدا غلط نکرده مردم استوال نکرده خدا داره کاری خطی است مثالی که میتونیم بزنیم و تو کلماتی که خلاصه میشه کلمات و این از فارسی مثال بزنیم میز مثلا اون مثلا خب به کور دارم همقدر استعمال توی کار با سهدنیه می‌دونی آقا همون یه‌صندل یا آفرین ولی صندل چی تو سرت میاد یه معنی دیگه نداره آفرگاه که داره اصفهانی یا می‌گه می‌چی بیا صندلی یه بابا صندل رو دیگه دیگه جا همه می دونن که من اونجا گفته میشدند بردارید اینو بردارید. آقا شما میگه بسم الله سوره حم ما می گیم می خریم می بسم الله الحمدلله وقتی که تو قرآن من دارم حمد رو می خونم میگه یا کنابود و یا کناست می میگم یا کنابود یا کناست. این مگه تشدید قرآن پاک میشه. اصلا تشدید نداشته. پاک نمیشه که چون همونش تشدید هست و همه می دونن تشدید و اینم درس روی هم دو میخونه، دیادرورفی میخونه. اینو راحت میگی. فکتشن چه نه ببین، بهرجه نه تو تاش مثلا تو ه بره، ه، مثلا میام ارکان در دولت لاهره به ما دین. خوب، دو هم بس وبس هم دو میخون، تو کلمات دیگه اون عرب داره گوش میده من چی رو میخوام. خب؟ اما تو هم که این نیست میدونه من دارم قرار میخونم من دارم قرآن که مثل درست یا آ خدا میدونه بیدونم دوست دارم نامزد مگر اجبار بگم بگم خدا دوست من جامعه مگر خدا دوست دارم تناسب حرام الان بکنم شو یا اون دوست دارم حرام بکنم نکنه حرام بکنه سپس ما وایشون علیم و از خاندان بیم بباز و مهارت نه نه نه نه نه نه نه نه شون چون بیای پیش رو ببین؟ حالا یه عقادی جامعه شرایط باشه یه تاریه عام هیچ اختلافی اهل سنت امامیه و بین خود اهل بعضی همه بحث لغتی دوباره میگم یعنی عقره که اینجا گفتی معنای عقره یعنی جامعه یعنی به قرینه یه فحص نماز میگه اقره باشن یعنی جامعه باشن جامعه باشن یعنی چی؟ یعنی هم قرائتش خوب باشه دوستان هم احکام نماز رو ولی بلد باشه شکری ای کرده این دو و سه نیدونه چیکار کنه میلسته و چار بدونه حالا این آها قرائتش خوبه قراعت اینو خام چیزی زهن را یه جد اینو اینه تو جواب کدن بمونی قراعت صحیح خوبه اما اگه یکی بویس امام جماعت بده نمیتونه که اگه شک کرد و شو شرکچیه مثلا به است و چهار شک کرد چیکار باید بکنه اگر مثلا ببین الله اکبر رفع بدر صر و گفت یعنی حمد و نعمت بازیت چی الان اما باجره حمد و نعمت هم هیچ واجباتی نیست واجبه خیلی رو که باطل نیست اما این طرح از رفتون نه نوازش اما روحانی هنگی او بدده اینا حالا کدوم وایستن؟ دوانی حالا باز کنون وایستن؟ وا. اینجا او مهم اقراییته لذات از این خصوص براعت نیست نماز. از احکام نماز بعد حالا که چون معونه کسی احکام بلد باشه احکام نماز چیه قراعت پس بیوقتی اقرا یعنی چی هم, قرارت قرارت هم بلد قراعت ام برای اقرا که معنای جامه ولی طرز آدمی قراعت خصوص کیه بعد قراعتش فقط خوب باشه ولی احکام رو بلد نماز. نباشه مثلا اینکه اگه اینجای اقرب رویسته یا افقه هم بایسته راستی بایدن امراد و افقه یه امراد رو داره چون اقرب برای کسیه چه؟ جامعیت داشته باشه یعنی درسی رو نمید اقرب خصوص کسیست که استفران گراهتش درست باشه این از تشکیه که فکر نکنم کسی رو بگیستم خود ما؟ یعنی رو از اصفر بگیستم نه نه نه بله بله اینکه چون اصلا دازم اقرامیت رو به اینجا نفر اقرامیت کدوم وایسه نیگه وایسه یا مثلا یه ساخنه وایسه کسی که مالک خونه است، مثلا امام جماعت وایسه این این بایست که دیگه به اختلاف بین امام یو شیعه راجع به امام جماعت شدن دوستان زن آیا زن میتونه امام جماعت بشه یا زن نمیتونه امام جماعت بشه بخواید بحث این بحثمونه دیگه برای جلسه آینده دیگه افتا بالا نمیان آسلام نمیشه